در سرزمینی پادشاهی زندگی می کرد که همسرش را از دست داده بود. اون دختر بسیار زیبا و عاقلی داشت. پادشاه ها به خاطر از دست دادن همسرش غمگین و افسرده بود. ولی بالاخره از تنهایی خسته شد و با ملکه بیوی که دختری داشت ازدواج کرد. دختر ملکه برخلاف دختر پادشاه بسیار زشت و بر جنس بود. نامادری و دخترش به دختر زیبای پادشاه به شدت حسادت کردند. با این حال وقتی پادشاه خونه بود سعی میکردن چیزی بروز ندن چون میدونستن که پادشاه دخترش رو خیلی دوست داره یه روز پادشاه برای نبرد با پادشاهی دیگه به جنگ رفت و ملکی جدید فرصتی پیدا کرد تا هر کاری که میخواست انجام بده ملکه دختر پادشاه رو گرسنه نگه میداشت اون رو کتک میزد و آزار میداد یه روز ملکی بجنس تصمیم گرفت دختر پادشا رو مسئول مراقبت از گله گاوها کنه. به این ترتیب دختر بیچاره مجبور بود هر روز گاوها رو برای چرا به ها و مراتع اطراف ببره. نامادری بدجنس قضا بسیار ناچیزی هم بهش میداد و همین جد شاهزاده خانوم روز به روز رنگ پریده‌تر و لاغرتر میشد. اون همیشه غمگین بود و گریه میکرد. در بین گله گاو نر بزرگ و آبیرنگی وجود داشت که موهایی صاف و نرمی داشت و اغلب کنار دخترک میومد تا اون نوازشش کنه یه روز وقتی دختر پادشاه غمگین و ناراحت نشسته بود و گریه میکرد گاو نر کنارش اومد و ازش پرسید که چرا همیشه غمگینه اما دخترک همینطور به گریه کردن ادامه داد گاو نر گفت حتی اگه نگی من دلیل ناراحتی تو رو میدونم ملکه تو رو خیلی اذیت میکنه و میخواد تو از گرسنگی بمیری ولی اصلا نباید نگران غذا باشی توی گوشه چپ من ای هست که اگه اون رو برداری و روی زمین پهن کنی تمام غذاهایی رو که دوست داری در اون پیدا میکنی دختر پادشاه سفره رو از گوشه چپ گاو آورد و اون رو روی علف‌ها پنگ کرد یک دفعه سفره پر از انواع و اقسام غذاهای خوشمزه شد بعد از چند روز دختر پادشاه سلامتی و زیبایی اولیش رو به دست آورد. اون دیگه رنگ پرید و لاغر به نظر نمی رسید و گناهاش گل انداخته بود. ملکه و دخترش از اینکه اون رو اینطور شاد و با ترابت می دیدن بسیار خشمگین بودن. ملکه نمی تونست بفهمه چطور با غذای بد و ناچیزی که می خوره اینطور شاد و سر حاله اون فکر می کرد که حتما یکی از خدمتکاران به دخترک ازا میده به همین جهت یکی از ندیمهاش رو مأمور کرد که اون رو در جنگل تعقیب کنه ندیمه دختر پادشاه رو تعقیب کرد و دید که اون سفرهای رو از گوش گاو بیرون میاره و روی زمین پهن میکنه و بعد سفره پر از غذاهای رنگین میشه ندیمه پیش ملکه رفت و تمام ماجرا رو براش تعریف کرد در همون موقع پادشاه در جنگ پیروز شد و به خونه برگشت تمام اهالی قصر از دیدن پادشاه خوشحال شدند ولی هیچ کس به اندازه دختر پادشاه خوشحال نبود ملکه بعد از برگشتن پادشاه تظاهر به مریض بودن کرد و به پزشکی که به ایادتش اومده بود مقدار زیادی پول داد تا بگه که بیماری اون درمانی نداره مگر اینکه بیمار مقداری از گوشت گاو آبی رو بخوره دختر پادشاه و تمام اهالی قصر از پزشک خواهش کردند که راه دیگهای برای نجات جان ملکه پیدا کنه تا مجبور به کشتن گاو نشن چون اون گاو موجود بینظیری بود و همه اونو دوست داشتن ولی پزشک گفت که هیچ راهی برای درمان ملکه وجود نداره و گاو نر باید کشته بشه دختر پادشاه از شنیدن این موضوع خیلی غمگین شد و به سرعت خودش رو به گاو نر رسوند گاو سرش رو پایین انداخته بود و طوری افسرده به نظر میرسید که دختر پادشاه با دیدن اون شروع به گریه کرد. گابنر پرسید: "برای چی گریه میکنی؟ دختر پادشاه تمام ماجرا رو برای گابنر تعریف کرد و گفت که ملکه با هیله و نیرنگ میخواد اون رو بکشه. گابنر گفت: "اونها بعد از کشتن من تو را هم می‌کشن. بیا امشب با هم از اینجا فرار کنیم." دختر پادشاه پیش خودش فکر کرد که ترک کردن پدرش کار درستی نیست. ولی زندگی در کنار اون ملکی بجنس هم دیگه غیر قابل تحمل بود. به خاطر همین به گاب نر قول داد که همراهش بره. شب موقعی که تمام اهالی قصد در خواب بودن دختر پادشاه به طویل رفت. گابنر اون رو بر پشتش سوار کرد و با سرعت از اونجا دور شد. صبح روز بعد مردم برای کشتن گابنر به طویل رفتن. اما اون رو پیدا نکردند. وقتی پادشاه سراغ دخترش رو گرفت فهمید که اون هم رفته. پادشاه قاصدانی رو برای جستجوی دخترش به تمام نقاط قلم قلمروش فرستاد و دستور داد گم شدن اون رو در تمام کلیساها اعلام کنند. ولی هیچ کس دختر پادشاه و گاب نر رو ندیده بود و درباره اونها چیزی نمیدونست. در این مدت گاب نر در حالی که دختر پادشاه بر پشتش سوار بود از سرزمینهای زیادی عبور کرده بودند. روزی اونها به جنگلی از مصر رسیدند. تمام درختان، شاخ و برگا و گلهای این جنگل از جنس مس بود. گاب قبل از ورود به اون جنگل به دختر پادشا گفت وقتی وارد جنگل شدیم باید خیلی مراقب باشی که هیچ برگی رو لمس نکنی. اگه برگی رو بکنی قول استسری که صاحب این جنگله و در اون زندگی میکنه هر دوی ما رو میکشه. دختر پادشا بهش قول داد که خیلی مراقب باشه و به هیچ چیز دست نزنه. وقتی اونها وارد جنگل شدند اون مدام به این طرف و اون طرف خم میشد تا هیچ برگی باهاش تماس پیدا نکنه ولی جنگل اونقدر انبوه بود که بالاخره دختر پادشاه به برگی خورد و برگ کنده شد گاو گفت ای وای چه کردی این کار ممکنه به قیمت جونمون تموم بشه باید برگ رو به دقت پیش خودت نگه داری وقتی اونها به انتهای جنگل رسیدن قولی با سه سر به سمتشون حمله کرد. قول گفت، این کیه که به جنگل من آسیب رسونده؟ گاو نر جواب داد، این جنگل به همون اندازه که مالتایه به من هم تعلق داره. قول گفت، حالا که اینطوره باید با هم بجنگیم. به این ترتیب، اونها با هم گلاویز شدن. گاو نر با تمام قدرت شاخ و لگد میزد، ولی قول هم به خوبی اون می جنگ یک جنگی روز طول کشید و سرانجام گاو قول رو کشت، اما تمام بدنش مجروح شده بود و به سختی میتونه حرکت کنه. گاوه از دختر پادشاه خواست که ظرف مرهمی رو که قول به کمرش بسته بود برداره و مرهم داخل اون رو روی زخماش بگذاره. به این ترتیب روز بعد زخمهای گاوه خوب شد و اونها دوباره رای سفر شدند. اونها اونقدر رفتند و رفتند تا اینکه به جنگلی از نقره رسیدند. درختان، بوته ها، شاخ و برگ، گل و هر چیزی که در این جنگل بود از جنس نقره بود. گابه قبل از ورود به جنگل به دختر پادشاه گفت وقتی وارد جنگل شدیم خیلی مراقب باش که به چیزی دست نزنی و به هیچ چیز حتی یک برگی کوچیک آسیب نرسونی. این جنگل مال یک غول شش سره و من فکر نمی کنم که اگه مجبور بشم باهاش به جنگم بتونم به اون قلب کنم. دختر گفت بسیار خوب تمام سعی خودم رو میکنم که به هیچ چیز دست نزنم ولی جنگل اونقدر انبوه بود که به سختی میشد از بینش عبور کرد دختر پادشاه مدام به این طرف اون طرف خم میشد تا با شاخه ای تماس پیدا نکنه اون شاخه ها رو با دستش به دقت کنار میزد ولی یک دفعه ای به چشمش خورد و یکی از برگای اون شکست گاو گفت ای وای چه کار کردی؟ این کار ممکنه به قیمت جونمون تموم بشه قول این جنگل شیش سر داره و قدرتش دو برابر غول قبلیه برگ رو با دقت پیش خودت نگه دار هنوز حرف گاف تموم نشده بود که قولی جلوی اونها ظاهر شد و گفت این کیه که به جنگل من آسیب رسونده گاف گفت این جنگل همون اندازه که مال توه به منم تعلق داره قول گفت حالا که اینطوره بیا با هم به جنگیم و بعد به سمت گاف حمله کرد گاب شاخاش در چشمای قول فرو کرد بعد چنان به قول ضربه زد که تمام دل و قول بیرون رخت ولی قول به خوبی اون می جنگید. جنگ سه روز طول کشید تا اینکه بالاخره گاو گاب نر قول رو به حلاکت رسوند اما چنان زخمی و مجروح شده بود و از تمام بدنش خون می چکید که دیگه نمیتونست از جای خودش بلند شد اون از دختر پادشاه خواست که ظرف پر از مرهمی رو که قول به کمرش بسته بود بیاره و مرهم داخل اون رو روی زخماش بگذاره بعد از اون حال گاب نر بهتر شد ولی اونها مجبور شدن یک هفته اونجا بمونن تا گاب نر کاملا بهبودی پیدا کنه و بتونه به سفر ادامه بده یک هفته بعد اونها دوباره راهی سفر شدن ولی گاب نر هنوز ضعیف بود و نمیتونست سری را بره به همین خاطر دختر پادشاه بر پشت اون ننشست و پیاده در کنارش برا افتاد اما گابنر نر اونو وادار کرد که دوباره بر پشتش سوار بشه به این ترتیب اونها مدتی طولانی به سفر خودشون ادامه دادن و از سرزمینهای بسیاری عبور کردند دختر پادشاه نمیدونست که گابنر نر اون رو به کجا میبره اونها بعد از مدتی به جنگلی از طلا رسیدن توی این جنگل تمام درختها گلها و سایر گیاهان تلایی خالص بودن. این بار هم گاو از دختر پادشاه خواست که به چیزی دست نزنه چون مالک اون جنگل قولی نهسر و بسیار تر و بزرگتر از دوقل قبلی بود و اون نمیتونست در نبرد با اون گول پیروز بشه. دختر پادشاه قول داد که خیلی مراقب باشه. اما اون جنگل از جنگل نقره هم انبوهتر بود و هرچه بیشتر پیش میرفتن مترقیمتر میشد. به تدریج جنگل اونقدر انبوه و متراکم و درختان و گیاهان اونقدر به هم نزدیک شدن که دختر پادشاه فکر کرد دیگه هیچ راهی برای جلو رفتن وجود نداره. اون بسیار می ترسید که ما بادا چیزی بشکنه دخترک شاخه رو آروم با دستش کنار میزد تا به اونها نخوره ولی ها مدام به چشماش میخوردند و اون نمیتونست ببینه که چه چیزی رو می گیره. اون یک دفعه متوجه شد که سیبی رو در دست گرفته. دختر پادشاه، از سر شروع به گریه کرد ولی گاب نر ازش خواست که سیب رو پیش خودش نگه داره و به دقت ازش مراقبت کنه گاب تا جایی که میتونست اون رو آروم کرد ولی خودش به خوبی میدونست که نبرد سختی در پیش داره و سخت میترسید که مبادا نتونه در اون نبرد پیروز بشه لحظاتی بعد قولی با نه سر اومد جلو اون قول به قدری وحشتناک بود که دختر پادشاه می ترسید بهش نگاه کنه. قول گفت، این کیه که جرأت کرده به جنگل من آسیب برسونه؟ گاو گفت، این جنگل به همون اندازه که مالتهای به منم تعلق داره. قول گفت، حالا که اینطوره بیا با هم به جنگیم. اون دوتا به هم حمله کردند و نبرد سهمگینی آغاز شد. گاو نر چشمهای قول رو با شاخاش بیرون کشید و شاخاش رو در بدن قول فرو کرد. ولی قول هم به خوبی اون میجنگید و وقتی گاو نر یک سرش رو از بین میبرد سرهای دیگرش دوباره از اون حمایت میکردند جنگ یک هفته طول کشید تا اینکه بالاخره گاو نر تونست قول رو به هلاکت برسونه ولی چنان آسیب دیده و ضعیف شده بود که به هیچ وجه نمیتونست حرکت کنه از تمام بدنش کون جاری بود و حتی نمیتونست از دختر پادشاه بخواد که ظرف مرهمی رو که قول به کمرش بسته بود برداره و مرهم داخل اون رو روی زخمش بگذاره. ولی دختر پادشا این بار به خوبی میدونست باید چیکار کنه. اون مرهم رو اوورد و اون رو روی زخمهای گاو گذاشت. به این ترتیب حال گاو کمی بهتر شد ولی اونها مجبور شدن سه هفته اونجا بمونن تا گاو دوباره بتونه حرکت کنه. سه هفته بعد اونها دوباره براه افتادند. گاف نر گفت که دیگه تا رسیدن به مقصد. راه زیادی نمونده. اونها این بار از بالای کویهای مرتفع و از بین جنگل انبوه گذشتند و بالاخره به جایی رسیدند که پر از تپه بود. گاونر از دختر پادشاه پرسید: چیزی میبینی؟ دختر گفت: نه. به جز آسمون و بالای سر و تپه‌ای دور برم چیزی نمیبینم. اونو از تپه بالا رفتن تا بتونن اطراف رو بهتر ببینن. گاف گفت: حالا چیزی میبینی؟ دختر گفت: بله. قصر کوچکی رو در فاصله بسیار دور میبینم. گاو گفت نه نباید قصر کوچکی باشه. اونها دوباره به راه افتادند و بعد از مدتی از سپه بلند دیگهی که دیواری سنگی و شیب داشت بالا رفتن. گاو نر از دختره که پرسید حالا چیزی میبینی؟ دختر گفت بله حالا قصر بزرگی رو در نزدیکی اینجا میبینم. گاو گفت تو باید به اونجا بری. در نزدیکی قصر طویلی هست. تو باید در اون اقامت کنی. داخل طویلی یک پیراهن چوبی پیدا می کنی. اونو بپوش. بعد به قصد برو و خودت رو کاری پیراهن چوبی معرفی کن و بگو که دنبال کار می گردی. ولی پیش از اون که بری باید چاقوی کچکیت رو در بیاری و سر من رو با اون ببری. بعد از اون که سرم رو بریدی پوستم رو بکن و اون رو بپیچ و زیر دیوار سنگی بگذار. بپ برگ مسی برگ نقره و سیب طلا رو هم روی پوز قرار بدی نزدیک دیوار چوبی هست که هر وقت با من کار داشتی با اون ضربهی به دیوار سنگی بزن تا من بیام دختر پادشاه اول از انجام این کار من کرد خودش رو و گفت که من این کار رو انجام نمیدم ولی گابنر گفت این تنها پاداشه که در مقابل کارهایی که برات انجام دادم از تو میخوام برای این دیگه چاره ای نداشت و با اینکه دوست نداشت این کار را انجام بده ولی سر گاو رو با چاقوش برید پوست اون رو کند بعد پوست رو تا کرد و برگ مسی برگ نقره از سیب طلا رو داخل پوست قرار داد بعد پوست رو سیر دیوار سنگی گذاشت بعد از اون در حالی که بسیار غمگین بود و تمام راه گرگییم میکرد به طرف طبییل رفت وقتی به اونجا رسید لباس چوبی رو تنگ کرد و به طرف قصر پادشاه ها افتاد اون با آشپس خونه قصر رفته و خودش رو پیراهن چوبی معرفی کرد و از اونا خواست که شغلی بهش بدن. آشپس بهش گفت میتونی اینجا بمونی و زعف ها رو بشویی. دختری که این کار رو انجام میداد اینجا رو ترک کرده. تا هم به محض اینکه از اینجا خسته بشی میری. دخترک گفت نه مطمئن باشید اینطور نمیشه. بعد تمام زعف ها رو خیلی تمیز و خوب شست. روز یکشنبه، کاری از خدمتکاری که برای استهمام شاهزاده آب میبرد، خواهش کرد که این کار رو به اون واگذار کنه ولی خدمتکار بهش خندیده گفت چرا میخوای به اونجا بری نکنه فکر کنی شاهزاده به آدم مزحکی مثل تو نگاه میکنه؟ اما کاری دست بردار نبود اونقدر خواهش و تمنا کرد که بالاخره خدمتکار با درخواستش موافقت کرد وقتی اون پله ها بالا میرفت پیراهن چوبیش چنان طلق و به هم میخورد و صدا میداد که شاهزاده بیرون اومد تا ببینه چه خبره وقتی اونو دید پرسید تو دیگه چه جور موجودی هستی دختر گفت برای شما آب آوردم شاهزاده گفت فکر کردی من از این آبی که تو آوردی استفاده می‌کنم و ظرف آب رو روی سرش خالی کرد کاری چیزی نگفت و با ناراحتی از پله‌ها پایین رفت بعد از آشپز اجازه گرفت به کلیسایی که در همون نزدیکی بود بره اما قبل از رفتن به کلیسا به طرف دیوار سنگی رفت. و همونطور که گاب گفته بود با چوبی که در نزدیکی دیوار قرار داشت زربهی به اون زد بلافاصله مرد جلو اومد و از اون پرسید که چی میخوای. دختر پادشا گفت که میخواد به کلیسا بره و به که کشیش گوش کنه ولی لباسی نداره که بپوشه مرد پیراهنی به درخشش جنگلی مسی بهش داد و از بزینی هم در اختیارش گذاشت دختر پادشا وقتی به کلیسا رسید از عصبیاده شد و به داخل رفت. داخل کلیسا مردم شگفت زده بهش نگاه کردند و اون رو به همدیگه نشون نشون میدادند. همه می‌خواستن بدونن که اون دوشیزه زیبا با اون لباس گرانبها که به تن کیه و از کجا اومده. وقتی کشیش معذر رو آغاز کرد، هیچ کس به حرفاش گوش نمیداد چون همه به دختر پادشاه نگاه می‌کردن. شاهزاده هم چنان مسهور اون شده بود که نمیتونست به هیچ چیز دیگه‌ای توجه کنه. وقتی دوشیزه ناشناس میخواست از کلیسا بره بیرون شاهزاده هم اون را تعقیب کرد و در کلیسا چنان پشت سر اون بسته شد که یک لنگ دستکش دخترک لاگ درگیر کرد دوشیزه سیبا به طرف اسبش رفت و سوار اون شد شاهزاده هم به دنبال اون دوید و ازش پرسید که از کجا اومده کاری جواب داد من از سرزمین حمام اومدم موقع که شاهزاده جلو رفت تا دستکش رو بهش بده دخترک زیر لب زمزمه کرد تاریکی پشت سرم باش و نور راه هم رو روشن کن تا شاهزاده نبینه که به کجا میرم و بعد بدون اینکه شاهزاده متوجه بشه که از کدوم طرف و به کجا میره ناپدید شد و دستکشش پیش شاهزاده موند شاهزاده تا اون زمان چنان دستکشی ندیده بود. اون به نقاط دور و نزدیک رفت تا بفهمه اون دوشیزه مغرور و زیبا از کجا اومده؟ ولی هیچ کس پاساق این پرسش رو نمیدونست. یک شنبه که بعد، یکی از خدمتکاران در حال بردن حوله برای شاهزاده بود. کاری بهش گفت خواهش میکنم اجازه بده من اون رو ببرم. خدمتکار گفت چرا میخوای این کارو بکنی؟ مگه ندیدی دفعه پیش چی شد؟ ولی کاری دست بردار نبود. اونقدر خواهش و اصرار کرد تا حوله رو بهش دادن. پیراهن چوبی انقدر تلقو تلوق می‌کرد که وقتی میخواست حوله رو بالا ببره، شاهزاده از ات اتاقش بیرون اومد. و وقتی کاری رو مقابل خودشتید رو گرفت و به طرف صورت اون پرتاب کرد و گفت: "اجوز دیگه زود از اینجا برو. فکر میکنی من از که انگوشتای انگشتای کثیفتو بهش خورده استفاده میکنم؟ پادشاه ساد به کلیسا رفت و کاری هم از آشپز اجازه خواست تا به کلیسا بره. آشپز ازش پرسید که چطور میخواد به کلیسا بره در حالی که به جز اون پیراهن چوبی تیروزش چیزی برای پوشیدن نداره. ولی کاری اونقدر کرد تا اینکه سرانجام آشپس بهش اجازه رفتن داد. اون یک بار دیگه خودش رو به دیوار سنگی رسوند و با چوب ضربه‌ای به اون زد. همون مرد بار دیگه بیرون اومد و پیراهنی بسیار زیباتر از پیراهن قبلی بهش داد. سراسر پیراهن با نقره گلدوزی شده بود و مثل جنگل نقره میدرخشید. مرد اسب بسیار زیبایی که افساری از جنس نقره داشت هم در اختیار اون گذاشت. وقتی دختر پادشاه به کلیسا رسید، مردم بیرون ایستاده بودند و می‌خواستند بدونن که اون از کجا میاد. شاهزاده جلو دوی تا اسب دوشیزه زیبا رو نگه داره و بهش کمک کنه که از اسب پیاده بشه. ولی دختر پادشاه فوری پایین پرید و گفت که نیازی به این کار نیست. چون اسبش چنان خوب تربیت شده که هر وقت اون بگه بی حرکت میایسته و هر وقت که اون بخواد حرکت میکنه. بعد همه با هم وارد کلیسا شدند. ولی باز هم هیچ کس به حرفهای کشیش گوش نمیکرد. و همه دوشیزه زیبا رو تماشا میکردند شاهزادههم احساس کرد که به شدت بهش من شده وقتی مراسم به پایان رسید دختر پادشاه از کلیسا بیرون رفت و سوار اسبش شد شاهزاده با عجله جلو اومده دوباره ازش پرسید که از کجا اومده دختر پادشاه گفت من از سرزمین هوله اومدم و در حالی که سخن می میگفت شلاق سوارکاری خودش رو به زمین انداخت موقعی که شاهزاده خم شد تا اون رو از روی زمین برداره دخترک زیر لب گفت تاریکی پشت سرم باش نور راه هم رو روشن کن تا شاهزاده نبینه که به کجا میرم. به این ترتیب دختر پادشاه بار دیگه بدون اون که کسی بفهمه به کجا میره اونجا رو ترک کرد. شاهزاده بعد از رفتن اون سعی کرد در مورد سرزمینی که دوشیزی زیبا از اونجا آمده بود اطلاعاتی پیدا کنه. ولی هیچ کس در مورد سرزمین حول چیزی نمیدونست. شنبهگی بعد یکی از خدمتکاران میخواست برای شاهزاده شونه ای ببره کاری خواهش کرد که شونه رو بهش بده تا اون برای شاهزاده ببره ساگرین اون چرا که دفعه قبل رخ داده بود بهش یادآوری کردند و به خاطر اون که اجازه میداد شاهزاده اون رو با اون پیراهن چوبی اززشت و سیاه ببینه سرزنشش کردند ولی کاری اونقدر اصرار کرد تا بالاخره شونه رو بهش دادند وقتی شاهزاده سر و صدای چوبی اون رو شنید بیرون اومد شون را از دستش گرفت و اون رو به طرفش پرتاب کرد و بهش دستور داد فوری از اونجا دور بشه. بعد از اون شاهزاده به کلیسا رفت و کاریم اجازه خواست تا به کلیسا بره. سایرین از اون پرسیدن تو که جز این پیراهن زشت و سیاه لباسی برای پوشیدن نداری چطور میتونی بین مردم بری؟ ممکنه شاهزاده یا کسی دیگه تو رو ببینه و هم تو و هم ما به دردسر بیفتیم. ولی کاری دست بردار نبود. اونقدر اصرار کرد تا سرانجام با رفتنش موافقت کردن کاری این بار هم مثل دو دفعه قبل کنار دیوار سنگی رفت و با چوب زربهی به اون زد بعد همون مرد بیرون اومد و پیراهنی بسیار زیباتر و عالیتر از دفعات قبل بهش داد این پیراهن از طلاح و الماس ساخته شده بود او اون همینطور که اسب باشوکی رو از دین داشت بهش میداد دختر پادشاه سوار شد و به سمت کلیسا رفت مردم و کشیش همگی بیرون کلیسا ایستاده بودند و در انتظار اومدن اون بودند شاهزاده با دیدن اون جلو دوید تا اسبش رو نگه داره ولی اون فوری پایین پرید و گفت نه متشکرم احتیاج به این کار نیست اسب من چنان تربیت شده است که هر وقت بهش امر کنم بی حرکت میسته. بعد از اون همه با هم وارد کلیسا شدند ولی این بار هم کسی به حرفهای کشیش گوش نمیداد و همه مشغول تماشای دوشیزه زیبا بودند و دلشون میخواست بفهمن که اون از کجا اومده شاهزاده چشم ازش بر نمیداشت و به شدت بهش دل باخته بود وقتی مراسم به پایان رسید دختر پادشاه بلند شد تا کلیسا رو ترک کنه شاهزاده مقداری قیر جلوی در کلیسا ریخته بود تا وقتی دوشیزه زیبا میخواد از اونجا اوبر کنه کفشهاش به قیر بچسبه و اون به بهانه کمک کردن به دوشیزه پیشش بره ولی دختر پادشاه به سر راهش اهمیتی نداد اون یک و وسط قیرها گذاشت و از روی اون به اون طرف برید. به این ترتیب یکی از کفش‌های طلای اون به قیرها چسبید و از پاشتر اومد. وقتی دوشیزه زیبا سوار اسب شد، شاهزاده از کلیسا بیرون توید و ازش پرسید که از کجا اومده. اون جواب داد از سرزمین شانه. و وقتی شاهزاده خواست کفش رو بهش بده، دخترک زیر لب زمزمه کرد تاریکی پشت سرم باش، نور راه هم رو روشن کن. تا شاهزاده نبینه که به کجا میرم به این ترتیب شاهزاده باز هم متوجه نشد که دوشیزه زیبا از کدوم طرف و به کجا رفت اون سراسر جهان رو گشت تا سرزمین شونه ها رو پیدا کنه ولی هیچ کس نامه چون این سرزمینی رو نشنیده بود بالاخره شاهزاده دستور داد اعلام کنند که کفش به پای هر دوشیزهی اندازه بشه با اون ازدواج میکنه به این ترتیب چیززه های بسیاری از چهار گوشه دنیا به اونجا آمدن تا کفش را امتحان کنند. ولی کفش طلاایی کوچیک وذری به پاگ هیچ کدومشون درفت. مدت ها گذشت. روزی نامادری دختر پادشاه همراه دخترش به اونجا آمد و کفش به پایی دختر اون اندازه شد و شاهزاده به خاطر قولی که داده بود مجبور به ازدواج با اون دختر زشت و نفرتنگیز شد. به این ترتیب همه چیز برای برگزاری مراسم ازدواج آماده شد. و دختر نامادری، لباس عروسی رو برتن کرد ولی موقعی که اونها به طرف کلیسا حرکت کردن پرنده رو که درختی نشست و چون این خوند تکیه از پاشنه اون، تکیه از پنجه اون کفش کاری پیراهنچوبی وقتی که راه میره پر از خون میشه پرنده درست میگفت چون واقعا از کفش طلا خون بیرون میرخت به این ترتیب شاهزاده دستور داد تمام خدمتکاران و ندیمه های قصر بیان و کفش رو امتحان کنند. ولی کفش طلا به پای هیچ کدوم از اونا اندازه نشد. شاهزاده که معنی شعر رو پیدا کرده بود در حالی که سایر مشغول امتحان کردن کفش بودن پرسید پسکاری پیرانچوبی کجاست؟ بقیه جواب دادن اون موجود عجیب؟ احتیاج به اومدن اون نیست. اون پاهایی همچون اسب داره شاهزاده گفت اشکالی نداره حالا که همه کفش و امتحان کردن کاری هم بیاد امتحان کنه. بعد جلوی در رفت و با بلند اونو صدا زد. کاری کاری در حالی که پیراهن چوبیش چنان تلق و تلق میکرد که انگار چندتا تا اجداد در حال حرکت بودند پیش شاهزاده اومد. خدمتکاران با دیدن اون شروع به خندیدن کردند و گفتند بیا این کفش طلا رو بپوش تا یک شاهزاده خانم بشی. کاری کفش رو گرفت و به راحتی اون رو پوشید. بعد پیراهن چوبی خودش رو کناری انداخت و ناگهان پیراهن طلایی که زیر اون پوشده بود و همراه لنگه دیگر کفش طلا نمایان شد. پیراهن طلا همچون نور خورشید میدرخشید. شاهزاده فوراً اون رو شناخت و با خوشحالی جلو دوید و دستش رو گرفت. اون وقتی شنید که دوشیزی زیبا دختر یک پادشاه خوشحالیش دو چندان شد و اندکی بعد اون دو تیگه مراسم بسیار با شکوهی ازدواج کردند. قصه ما به سر رسید. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی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 dotblockfall.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی